پنجم تب فروکش کرده بود با این حال برای ترلکوفسکی هنوز سخت بود که به روال عادی زندگیش برگردد به نظر می که با فروکش کردن تب بخشی از وجود ترلکوفسکی هم از دست رفته است چون حالا به نوعی احساس کم بود می کرد با هر حرکتی حوااس کنت شدهش به او یادآور میشدند که هماهنگی لازم با اعضای بدنش را از دست دادند و همین او را سخت نگران میکرد. وقتی آن روز صبح از رخت خواب بیرون آمد به نظر میرسید از فرمانی اطاعت می کند که مال خودش نیست. دمهای های ابری را که حالا دیگر همیشه داخل آپارتمان می به پا کرد. یک حله روی شانههایش انداخت و رفت برای درست کردن چای آبجوش آماده کند. هنوز ضعیفتر از آن بود که به به اداره برود. آب جوش را از صافی که این بار از برگهای های تازه چای پر بود گذرند. مایع درون فنجان بسیار خوش رنگ بود. به خوشرنگی رنگی جوهرهای چینی با رایهی ملایم و در عین حال مقاومت ناپذیر. ترلکوفسکی هیچ وقت شکر توی چای نمی ریخت. جاش یک حبه قرن در دهانش میگذاشت. و چای را در جرعه های کوچک می‌نوشید. صدای چکشکاری کارگرانی که مشغول تعمیر سقف شیشهای بودند، از حیات شنیده میشد. ترلکوفسکی حبه قند روی زبانش گذاشت، فنجان چای را برداشت و به طرف پنجره رفت. دو کارگری که در حیات مشغول کار بودند و در آن لحظه به طور اتفاقی به بالا نگاه میکردند، با دیدن ترلکوفسکی خنده‌ای بلند و ای سر دادند. اول فکر کرده اشتباه میکند و دوچار خطایی دید شده است اما حقیقت خیلی زود خودش را آشکار کرد کارگرها داشتن آشکارا او را مسخره میکردند گیج شده و به شدت عصبانی و برافروخته بود ابروهایش را در هم کشید تا نشان دهد درباره رفتارشان چه فکری میکند اما حاصل یی نشد غیر قابل تحمل و منظورشون از این کارا چیه با عصبانیت پنجره را باز کرد و روی حفاظ آهنی خم شد. کارگرها با صدای حتی بلندتر از قبل خندیدند. ترلکوفسکی آنقدر عصبانی بود که دستهایش می لرزید. طوری که فنجان چای از دستش رها شد و به زمین افتاد. وقتی خم شد تا تکه های خرد شدهی فنجان را جمع کند باز هم قهقهی خندهی کارگرها را شنید. ظاهرا کارگرها از بی دستف او بسیار تفریح می کردند. وقتی دوباره به بیرون نگاه کرد، آنها هنوز با نیشخندی زننده و ناخوشایند به او نگاه می کردند متعجبان فکر کرد، مگه من باشون چکار کردم؟ میدانست هیچ خطایی مرتکب نشده، اما به دلایل غیرقابل فهمی دشمنش شده بودند. دیگر نمیتوانست بیش از این رفتارشان را تحمل کند. در حالی که میخواست وانمود کند سر از کارشان در نیاورده فریاد زد. موضوع چیه؟ چی میخواید؟ ماهیت زننده و گوش خراش خندیان ها حتی بیش از پیش معکد و غیر قابل تردید شد. چند دقیقه دیگر به ترلکوفسکی نگاه کردند و بعد به سر کار خودشان بازگشتند. اما حتی وقتی پشتشان به او بود، ترلکفسکی میتوانست فوزخندی را که روی لبانشان بود احساس کند. هر از گاهی سرشان را بلند می کردند و به پنجره او نگاه می کردند. بعد سرشان را تکان می دادند و زیر لب چیزی می گفتند. از شدت عصبانیت و تعجب سر جایش خوش زده بود. گویی پاهایش توی زمین ریشه دوانده بودند. بیهوده سعی می کرد تا دلیلی برای آنچه روی داده بود پیدا کند. علت این رفتارشون چی می تونه باشه؟ چرا باید به مغزی دیدن من بخندند؟ به طرف آینه رفت و به انعکاس خودش در آینه خیره شد اما او دیگر خودش نبود کمی بیشتر به آینه نزدیک شد فریاد وحشت بی صدایی در گلویش جمع شد و از حال رفت وقتی بعد از مدتی دوباره هوشیاریش را به دست آورد بلافاصله فهمید که انگام برخورد با زمین به شدت به خودش آسیب رسانده است با زحمت بسیار دوباره روی پاهایش ایستاده و این چیزی که دید تصویر خودش در آینه بود. تصویر زنی با آرایش سنگین. حالا متوجه همه چیز میشد. ماتیک سرخ رنگی روی لبهایش نشسته بود. گونه را قشر زخیمی از سرخ ها بود و روی مجه هم ریمل مالیده شده بود. ترسش آنقدر واقعی و ملموس بود. که تبدیل شدنش را به گلولهای سنگین در گلویش احساس میکرد سطح این گلوله به تیزی های اره بود و چیزی نمانده بود هنجرهاش را پاره کند چگونه به این ریخت و قیافه درآمده بود دچار خواب گردی نشده بود از این بابت مطمئن بود پس لوازم آرایش از کجا آمده بودند جستجوی دیوانه واری را در آپارتمان آغاز کرد و خیلی زود به نتیجه رسید. داخل یکی از کشوهای کمد کوچک حداقل دوازده شیشه در سایزها و رنگهای مختلف با انواع کرمپود در ظروف شیشه ای و تویوب دار دیده میشد. داشت اغلش را از دست میداد؟ شیشه ها را از کشو و بیرون آورد و به طرف دیوار پرتاب کرد. شیشهها با سر و صدای بسیار شکسته و روی زمین پخش شدند. همسایه ها بیدرنگ با مشت به دیوار کوبییدند. داش شغلش را از دست میداد. از این فکر به خنده افتاد، همسایه ها باز هم به دیوار کوبیدند. این بار محکم از قبل دیگر نخندید، کم کم داشت میفهمید چه به سرش آمده و این اصلا خنده دار نبود لباسش چنان خیص عرق بود که به بدنش چسبیده بود، روی لبه تخت نشست با تمام وجود کرد از پذیرش توضیحی که برای علت این وقایه به ذهنش رسیده بود، سر بازند. اما خودش هم می دانست که بی فایده است. حقیقت آنجا در مقابلش بود و همچون گلوله ها یا آتش که در آسمان شب منفجر می در مقابل چشمهایش میدرخشید. تمامش زیر آنها بود. همسایه داشتن آرام آرام از او یک سیمان شول می زاختند. آنها با دستدن به هزاران ترفند ناجوانمردانه مراقبت و گوش بزنگی مداوم با اراده آهنین هویت او را دگرگون می کردند. همگی در این توته دست داشتند و همه هم به یک اندازه مقصر بودند و او هم مثل یک ابله به دام باور نکردنیشان افتاده بود آنها برای گمراه کردنش چهره واقعیشان را پنهان کرده بودند و درباره خودشان به او دروغ گفته بودند تنها توضیحی که می‌شد برای در پیش گرفتن چرین روش عجیب و غریبی داد این بود که می‌خواستند با تضعیف روحیش از اعتماد به نفسش کاسته و اتکاب عقل و هوشش را از او بگیرند در تمام این مدت او چیزی جز یک بازیچه در دست آنها نبوده و وقتی خوب به جزئیات وقایعی که در طول مدت اقامتش در این آپارتمان اتفاق افتاده بود فکر کرد دیگر جای هیچ شکی برایش نبود که این بازی از همان ابتدا آغاز شده بود اولین باری که ترکوافی وارد این اتاق شده بود سرایدار توجه او را به پنجره توالت در آن سوی حیات جلب کرده بود بدون شک سرایدار از تمام وقایعی که قرار بود بعدها آنجا روی دهد با خبر بود. حالا معلوم میشد چه کسی زواه توی راه پله را پاک کرده بود تمام اینها زیر سر همسایه ها بود با این حساب جریان سرقت از آپارتمانش همکار ها بود. می‌خواستند با خراب کردن پالهای پشت سرش و محروم کردن او از گذشتهش هر امکان و احتمالی را برای برگشتن او به وضع عادی از بین ببرند. و هر وقت نشانه‌هایی از بازگشت شخصیت واقعیش دیده می‌شد، با مشت به در و دیوار می‌کوبیدند. مجبورش کرده بودند دوستهایش را ترک کند. و شب‌ها با لباس خواب و دمپای ابری راه برود. لابد مردی هم که در کافی آن طرف خیابان کار می کرد و او را تشویق کرده بود به جای قهوه شکلات بنوشد و به جای سیگار گالوز ژیتان بکشد یکی از همسایه ها بود. تمام اعمال و رفتار و تصمیماتش مکارانه به او تحمیل شده بودند. طوری که چیز زیادی از ترلکفسکی برایش باقی نمانده بود. و حالا با مقتنم شمردن بیماری و خواب سنگین ناشی از آن، تصمیم گرفته بودند ضربه سنگینی بر او وارد کنند برای همین او را آرایش کرده و به شکل زن درآورده بودند اما این بار در محاسباتشان اشتباه کرده بودند او برای چنین چیزی کاملا آماده نشده بود هنوز برای چنین حرکتی خیلی زود بود به یاد افکارش درباره مردانگی و قدرت جنسی افتاد و تازه اینجا بود که متوجه شد حتی خصوصیترین تعملاتش هم توسط دیگران به او دیکته میشده از جیب رب د شامرش پاکت سیگارش را درآورد و یک نقص سیگار آتش زد تصمیم گرفت همانجا بنشیند و در آرامش به اتفاقاتی که در این مدت بر سرش آمده بود فکر کند. به هر قیمتی که شده نباید اجازه میداد هوش و حواسش را از دست بدهد پک امیقی به سیگار زد و به دود سیگار که از سوراخای بینی بینیش بیرون می آمد و بالا می رفت نگاه کرد این وسط صاحبخانه خانه شکاره بود مطمئنا او رهبر گروه بود و تمام اعمال و حرکات دار و دسته آدمکش هایش را کنترل می کرد و آن پیرزن مادام دیاس و زنی که یک دختر معلول داشت آنها هم مثل او قربانی بودند یا از ها بدون شک آنها هم به همسایه ها تعلق داشتند که مأموریت پنهانی و توضیح‌ناپذیری به آنها محول شده بود. استلا چطور؟ آیا او از قبل میدانست که ترلکوفسکی در آن تاریخ به خصوص به بیمارستان میرود؟ آیا استلا را برای این به آنجا فرستاده بودند تا با قرار گرفتن بر سر راه ترلکوفسکی چون او را شیفته خود کند که دیگر دلیلی برای بیاعتمادی ترلکوفسکی نسبت به او باقی نماند؟ به خصوص که تصور وجود هر ارتباطی بین استلا و آپارتمان و همسایه ها بسیار بعید به نظر می رسید. بهتر بود در شرایط فعلی استلا را بی فرض کند. تحمل این را نداشت به هر جا که نگاه می کند دشمنانش را ببیند. دیوانه که نبود. اما مگر او چه گناهی مرتکب شده بود که با چنین شور و حرارتی در پی نابودیش بودند؟ شاید گناهی؟ در حد گناه مگسی که در تار انکه بود گرفتار آمده است ساختمان حکم یک دام را داشت و خوب هم کار میکرد حتی ممکن بود آنها هیچ خصومت شخصی با او نداشته باشند اما وقتی به یاد قیافه های عبوس و بیگذشت همسایه ها افتاد فوراً این فرضیه را کنار گذاشت جای هیچ شکی در خصومت شخصیشان به تکوفکی نبود آنها نمیتوانستند از سر گناهانش بگذرند و او را ببخشند چون او ترلکوفسکی بود. از او نفرت داشتند و مصمم بودند او را به سبب آنچه هست مجازات کنند. آیا این ماشین عظیم تنها برای مجازات او به راه افتاده بود؟ چرا خودشان را برای او این همه به زحمت انداخته بودند؟ چه عملی از او سر زده بود که مستحق چنین مجازاتی باشد؟ چرا او باید قربانی انتخابی آنها باشد؟ سرش را تکان داد نه این امکان نداشت باید دلیل دیگری در میان باشد سوال دیگری به ذهنش رسید آیا او اولین قربانی بود؟ و بعد یکی دیگر؟ کسی که در بیمارستان و زیر نوار زخبندی دیده بود واقعا سیما شول بود؟ و اگر نبود پس چه بلای سر او آمده بود؟ وقت بود که این دام به راه افتاده بود لیست اسامی مستعجرانی که به این ترتیب از بین رفته یا مسخ شده بودند به چند نفر می رسید همگی به پایانی همچون پایان سیما شول دوچار شده بودند یا به بعضی از آنها وظیفه زنده نگه داشتن یاد مردهها محور شده بود آیا همسایه ها از این راه برای تکسیر و نوزایی و ادامی حیات گونه استفاده می کردند بدن این صورت؟ آیا سیمان شول هم در این توطعه شرکت داشت؟ آیا آنها گونه ای از موجودات بودند که در اثر جهش بیولوژیک به وجود آمده اند؟ یا اینکه که صرفا کارشان آدم کشی بود؟ ترلکوفسکی مستجر قبلی را انطور که بار آخر دیده بود به یاد آورد. کفن پیچ شده زیر باندهای زخمبندی با دهانی باز. آیا ممکن بود یکی از همسایه ها دست به خودکشی بزند؟ او نه سیمون شول قربانی بود نه جلاد تحسیگارش را توی جا سیگاری خاموش کرد. اما آخر چرا؟ چرا باید بخواهند او را مسخ کنند؟ بعد نفس در سینهش حبس شد و چشمایش از وحشت گشاد شدند. روزی که او تمام و کمال به سیمون شول بدل میشد مجبور بود همان کاری را بکند که سیمون شول با خودش کرده بود. به کاشی بزند حتی اگر علاقه به این کار نداشته باشد کار دیگری از دستش ساخته نخواهد بود به طرف پنجره دوید توی حیات کارگرها به محض دیدن او با صدای بلند خندیدند پس برای همین بود که سقف شیشه ای را تعمیر می کردند برای او نایهان سرش به دوران افتاد دستش را به طرف صندلی دراز کرد تا پیش از آنکه دوباره به زمین بخورد روی صندلی بنشیند. اما او که نمیخواست بمیرد. این کار در حکم قتل عمد بود. فکر به پلیس مراجعه کند. اما چه کمکی از آنها ساخته بود؟ بر اساس چه شواهدی میخواست پلیس یا مثلا رئیس پاسگاه را که اتفاقا از دوستان سیاسی بود، متقاعد کند که ادعاهایش صحت دارند. اما بالاخره باید کاری میکرد. نمی توانست همینطور دست روی دست بگذارد و منتظر بماند فرار کند اما به کجا؟ به هر جایی فرقی نمیکرد. مهم این بود که تا فرصت باقی است از این ساختمان لعنتی خارج شود اما نمی توانست به همین سادگی از پولی که بابت ودیعه خانه داده بود سرف نظر کند باید راه دیگری پیدا می کرد. زمان درازی کنار پنجره روی صندلی نشست و فکر کرد تا اینکه بالاخره راه حلی به ذهنش رسید که امیدوار بود نتیجه بخش باشد. باید برای مدت کوتاهی به همین ترتیب ادامه میداد تا آنها تصور کنند فرایند تحول او به طور طبیعی در جریان است و در نتیجه دلیلی برای سوء زن نداشته باشند. در این فاصله می توانست کس دیگری را جانشین خودش در آپارتمان کند و بعد بدون آنکه آدرسی از خودش بجا بگذارد نابدید شود با این حال، دو نکته بود که باعث میشد این راه حل کاملا رضایت بخش نباشد. اولین مسئله مستجر بعدی بود که اگر بدون هشدار به این خانه میآمد به ناچار قربانی بعدی محسوب میشد. دیگر این که ممکن بود صاحبخانه به آسانی با انتقال ودیعه موافقت نکند. این کار بدون آنکه صاحبخانه را از پیش در جریان امر قرار داده باشد عملی نبود. راه حل ایدئال این بود که بی که کسی را از تصمیم خود متله سازد، آنجا را ترک کند و همه چیز را پشت سرش جا بگذارد اما تمام پسنداز تلرکوفسکی صرف پرداخت ودیعه این خانه شده بود. بدون این پول، چیزی که بتواند به آن اتکا کند برایش باقی نمی ماند. تنها شانس او در به دست آوردن زمان و پول بود. تصمیم گرفت بیرون برود و در خیابانهای اطراف کمی قدم بزند. آن هم با همین سرو وضع آرایش کرده باید هو کردن بچه ها و تحقیر و تمسخر آبران ناشناخته را تحمل می کرد. این کمترین بهایی بود که باید پرداخت می کرد. اگر می خواست با چسبیدن به یک امید واهی جانش را نجات دهد Thank you.